الله الرحمن الرحیم ما در شماره دوازدهم خواندیم خاندیم که حکم تکلیفی به پنج دسته طبق تقسیم بندی اکثر اصولی ها تقسیم بیشه. واجب و مستحب و حرام و و ببا حالا در شماره 14 های کتاب میخواد که واجب و بات واجب به با اعتبارای مختلف تقسیم بندی کنه واجب و خود واجب و بات واجب به جهت‌های مختلف زوایای مختلف چکار کنه؟ تقسیم بندی کنه میگه اقسام الواجب اقسام واجب یقسم الواجب و الى اقسام متعدده به اعتبارات مختلفه و نتکلم و فیمایلی ان كل قسم من هر تقسیمات میگه که تقسیم میشه واجب به قسمت های متعدد به اقسام متعدد با توجه اعتبار های مختلف آه، یه بار میاد از, ل... از نظر وقت تقسیم بندیش میکنه یا مثلا میاد از جهت های مختلف ایناو که در جروتر خواهیم خوند کارش میکنه تقسیم بندیش میکنه پس واجب اقسام مختلفی داره با به اعتبارات مختلف بگیم ما سخن خواهیم گفت در رابطه با هر قسمی از این تقسیمات تقسیم اولش به اعتبار وقته به اعتبار چیه؟ وقته شماره پانزه هم همین مسئله رو بررسی میکنه و مترش میکنه و جوابش میده بگه الواجب به نظری الى وقت ادائه واجب با توجه به وقت ادایش واجب از سه جهت از این جهت که چی موقع ادا میشه و به هاق الاعتبار واجب مطلق و واجب مقید از این جهت یعنی وقت ادا ادا یا واجب مطلق است یا چی است؟ مقید است. دقت داشته باشید. واجب یا مطلق است یا چه است؟ یا مقید است. مقاید. حالا تو حالا بحث همیده نمیذید. مثلا نمازات پنجگانه. مثل, مثل نمازات پنج چی؟ دقت فقط صبور باشید تا چند خط رو بخونیم انشالله حل میشه دقت داشته باشید واجب با توجه به وقت ادا با توجه به وقت ام. یعنی از این اعتبار از اعتبار وقت ادایش یا مطلق است یا مقید است یا مطلق است حالا مطلق و اول تعریف میکنه بعدش مقید فالواجب المطلق وهو, وهو بهذا الاعتبار واجب مطلق وواجب مقيد بقبئين اعتبار واجب واجب مطلق سواجب مقيد بعد ذلك تقسيم بعد نشكر الان قد ده واجب المطلق فالواجب المطلق هو ما طلب الشعر وفعله دون ان يقيد اداءه بوقت معين فللمكلف ان يفعله في اي وقت شاء واتبر ذمته بهذا الاداء ولا اثمع عليه في التأخير ولكن ينبغي له المبادرة الى الاداء لأن الآجال مشهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت ومن هذا أنه قضاء رمضان لمن أخطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء دون تقييد بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء وكالكفارة الواجبة على من حنث فيها. دقت لقداش تباشين بیگه واجب مطلق آن است که شاره انجام آن رو طلب کرده باشد بدون این که برای ادایش وقت معینی رو قید بکنه بدون که بیاد وقت معینی رو مراحت کار بکنه تایید بکنه آقا مثل نمازه ظهر نیست که از زوال باشه تا زمانی ای که یک برابر بیشه آ مثل نماز عصر نیست که وقت شو بکنه بلکه وقت شو نکرده اینو بگن واجب چی؟ مطلق. مطلق پس واجب با تواجب به وقت ادایش یا مطلق یا؟ مطلق. مطلقان است که شارع فعلش رو فعل اون واجب رو طلب کرده انجامش رو طلب کرده بدون این که ادایش رو بقید به وقتی معین بکند مکلف را اختیار هست که در هر وقتی که میخواهد انجامش دهد و زمهش رو از این عدا بری کند و گناهی بر او در تأخیر نیست اما متوجه باشید شایسته هست که مبادرت ببرزه به عداش زودتر اولو چکار بکنه انجامش بده چرا بگه را؟ مرگ مدتش مجهول هست زیرا مرگ در کمیل هست و انسان نمی که مصیبت موت چه لحظه به سراغش بیاید به خاطر این که نمی دوند پس شاهدسه است که این واجب مطلق رو چیکار کند زودتر انجامش بده مبادرت به ورزه به انجامش خب حالا مثال می میگه از این نوع هست قضای رمضان برای شخصی که با عذری شرعی اون رو خورده است شخصی با تاجب عذری شرعی روزه رمزانش رو خورده است حالا آیا قضایش مشخص هست میگه مطلق این رو باید عدا بکنه ولی وقتش تعییم نیست اما شایسته است که زیرتر این رو انجام بده و همچنین کفاره واجب بر شخصی که سوگندش رو شکسته است، سوگند خردسکاری رو انجام بده با انجامش نداده شو سوگندش رو چیکار کرده؟ این شخص باید کفاره بده این شخص باید چکار بکنه؟ دلوقت. کفاره سوگند آقایون این است که یا یک برده آزاد کند yeah. یا ده نفر را خوراک بدهد یا ده نفر را پوشاک بدهد <تصفح> اگر کسی توانایی اینا رو نداشت سه روز روز اگر کسی توانایی این گزینه ها رو آقای فقیری بود که اصلا نمیتواند حتی ده نفر را هم غذا بدهد. <تصفح> پوشاک بدهد پس این میاد سه روز کار میکنه سه روز پس اختیاری نیست زمانی است که گزینهای اول و شخص نتواند انجام بدهد پس کفارش جز واجبای مطلقه یا مقاید نیگه که جز واجبای مطلقه است وقتش در شده آقا که که چه شده بعد یک مقید این این مثالی بود برای مواجب چی؟ مطلق والواجب كواجب و الواجب المقید حالا دقت کنید که واجب مقید کدومه هو ما طلب الشر و فعله واين ادائه وقتا محدودا بگه واجب مقید آن است که شارع انجامش رو طلب کرده و برای ادایش هم وقتی مشخص رو تاییم کرده وقتی محدد رو آقا از این وقت شروع میشه تا اون موقع مثل نمازه نمازهای پنجگانه شاره انجامشون رو طلب کرده و برای عدائشون وقت هم چیکار کرده مشخص کرده ظهر از این موقع از تا این موقع عصر از این موقع تا این موقع مغرب از این موقع تا این موقع اینو میگن واجبه مقیده اما برا کفاره صوغت کی بو شخصش نکردی از فلان ساعت تا فلان ساعت یا از تا فلان ک الصلوات الخمس واجب مقیّد ماننت نمازای پنج گانه و صوم رمضان وروزيه رمضان فلا يجوز اداؤه قبل وقته المحدد و بتأخيره بتاخیره بعد وقتی من غیر عذر شرکی بیگوید در واجب مقید جایز نیست که اون کار رو قبل از وقت تعیین شده انجام بده جایز نیست که اون کار رو قبل از وقت تعیین شده چی کار بکنه؟ انجام بده آقا جایز نیست شما نماز ظهر رو قبل از زوال چی کار بکنید؟ بخورید و همچنین اگر بدون عذر شرعی تاخیرش کرد گناهکار است مجرم است چه؟ مجرم است. پس این اولین تقسیم بندی واجب بود. واجب با توجه به وقت ادا تقسیم میشد به واجب. مطلق واجب با توجه به وقتش. این از چه اعتباری بود؟ از زاویه وقت از زاویه چی بود؟ حالا بیاییم در شماره 16 تقسیم بندی میکنه واجب و با توجه به اعتباری دیگر با توجه به این که آیا صحیح انجام گرفته؟ در وقتش انجام گرفته؟ یا در وقتش انجام؟ نگرفته میاد تقسیم بندیش میکنه؟ شانزه الاداء والقضاء والإعادة يك ادا دو قضاء س إعادة هاريك زنار توزيب دي. دي قد بفرمايت بيجي ان المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سم يفعله أدا دي قد داشت باشد بيجي مكلف يعني ما نتوب يعني مكلف هر كسي كي برش تکلیف هست دیوانه نباشد اینا رو انشالله خواهیم خون. میگه مکلف زمانی که عدا کرد واجب رو در وقت خودش مکلف زمانی که عدا کرد واجب را در وقتش به صورت صحیح و کامل کارش چی نامیده میشه؟ عدا نامیده میشه بیگن؟ نواز رو عدا کرد و اذا فعله في الوقت المعين ناقصا ثم اعاده كاملا في هذا الوقت یا فعل وصار اعاده ده قد داشت اگر انجام داد اون واجب رو در وقت مشخص ولی به شکل ناقص به شکل کامل نبود به شکل صحیح نبود سپس عمر در همون وقت دوباره اونو انجام داد دوباره اون به شکل کابل و صحیح انجام داد اون موقع فعلش چی نمیده میشه؟ بگه اعادهش کرد قضا بعد از وقتشه ببینید اگر سر وقت اومد کارش رو چکار کرد؟ انجام داد به شکل صحیح و قابل بهش میگن ادا اگر در وقتش اما به شکل ناقص ابتدا انجامش داد دوباره اومد به شکل صحیح و کامل اند. در همون وقت انجامش داد بهش میگن اعاده آقا شما نبازو خوندی ولی درست نخوندی دوباره میگنی جاش میخونی اینو که دیگه نمیان قضا این سر همون وقت شد اینو میگن چه؟ اعاده یعنی تکرار پس عدا اعاده حالا قضا رو دقیق کنید و اذا عداه بعد الوقت صبح یا فعله قضا و زمانی که عدا کرد اون واجب رو بعد از وقت سرسبا. سرسبا. باله. بعد از وقت اومد مثلا ساعت هشت اومد نماز صبح خون یا مثلا عصر اومد نماز ظهر خون این موقع کارش چی نامیده میشه؟ قضا نامیده میشه پس آقا استلاحاتو یاد بگیرید این بخواست شما رو چی یاد بده؟ ادا داریم اعاده داریم قضا داریم اون است که در وقتش به شکل صحیح و کامل خوانده بشه اعاده اون است که در وقتش ابتدا ناقص خورده شده به شکل غیر صحیح در همون وقت دوباره بیاد کامل و صحیحش میخونه قضا حبولی هست که خارج از وقت بعد از وقتش بیاد چیکار میکنه انجامش میده خب ها شماره 17 ها بخونیم یا نه بله بکنید به نفر الواجب به نظر الى تعین, ال... تعین ال... مطلوب و عدم تعین دقیق داشته باشید این دفعه واجب رو از اعتبار دیگر تقسیم بندی میکنه این دفعه واجب رو به اعتبار دیگر چکار میکنه به این جهت که شریعت یک کاری رو به شما دستور میده آیا به اینهی یک کار خاصی رو از شما طلب کرده یعنی شما رو در چند کار دیگر چیکار کرده اختیار داره به این جهت و به این اعتبار که آیا اون واجبه رو براتون تاایید کرده یعنی شما رو به چند عمر چکار کرده اختیار داره از این جهت واجب و هو به هر الاعتبار واجب واین و واجب غیر میاین میگه تقسیم بندی واجب از این جهت تقسیم میشه به واجب معین و واجب غیر معین دقت داشته باشید واجب معین و واجب غیر معین حالا دقت کنید که واجب معین کدام است و واجب غیر معین کدام است معین الوائینو هو ماطلا و فالواجب معین طلعت تا کدوم تعریف میکنه؟ واجب معین هو هو ما طلبه شارع با ايده دقت داشته باشید واجب معینو رو تعریف میکنه میگه هو ما طلبه شارع به اینه غیر تخییر للمکلف بین امور مختلفه واجب معین آن است که شارع به ايده اون طلب کرده آقا نماز آه؟ نماز بخود. واقعه معین آن است که شاره اونو به اینه هیچ کار کرده طلبش کرده به شکل مشخص بدون این که مکلف رو بین چند امر اختیار بده به اینه براش مشخصش کرده به اینه براش کار کرده مانند نماز مانند روزه و حکم ها نو عدم براعت ذمته الا بفعلهی با عینه دیگه حکم این نوع واجب اینه که براعت ذمه نمیشی مگر این که با عینهی همون کار رو بعد چیکار بکنی انجام بدی همون کاری رو که تاین کرده شریعت باید چیکارش کنی انجامش بدی دیگه واجب معین ولی یک واجب دیگه در مقابلش هست که معین نیست مبهمه الا غير المعين المبهم واجب غیر معين یا واجب مبهم هو ما طلب شارع لا بعينه واجب غير معين یا مبهم آن است که شریعت ان رو بعينه تعیین نکرده بله ولكن ضمن امور معلومه اما بعينه مشخصش نکرده ولی زمن چند کار مشخص شخصو اختیار داده در زمن چند کار معلوم شخصو چکار کرده ولی المکلفی این ان رو واحدا منها لعدای هذا الواجب و مكلف اختیار دارد که برای عدای این واجب یکی از این چند امر معلوم رو چکار بکنه خودش انتخاب بکنه خودش چیکار بکنه, بکنه اتخاب بکنه که کفار کلیمیم بانند کفار سوگند آقا در کفاره سوگند کفارش واجبه غیر بایگره چرا؟ چون شما رو بین این که برده آزاد کنی یا بین این که ده نفر رو غذا بدید یا بین این که ده نفر رو پوشاف بدی اختیار داده بین این ستا شما رو چکار کرده؟ اختیار داده مکلف اختیار دارد هر یک از این ستاره رو اختیار بکنه هیچ مشکلی؟ نیست پس رو بگن واجبه چی غیر واجب. متوجه شدید؟ واجب مایین اونی هست که خود شریعت میاد به اینه برات چکار میکنه مشخصش میکنه مثل نماز و روزه و زکات اما واجب غیر مایین یا واجب مبهم آن است که شریعت چند امر رو مشخص میکنه و تو از میان اون چند تا امر چه داری؟ اختیار داریم فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا عَلَى الْحَانِفِي واحدون بین ثلاثتی اشیاء میگه واجب در کفاری سوگند بر شخص حالف بر شخصی که به سوگندش پای بند نبوده این است که یکی از اون سه چیز رو چکار بکند؟ اختیار بکنه یکی از اون سه چیز رو اختیار بکنه وَسَبَ الْبَقْ هَذَ الْوَاجِبَ بِالْوَاجِبِ الْبُخَيِّرَ بعضی اسم این چه واجب بخیر بعضیش گفتن واجب غیر بایین یا واجب مبهم و بعضی دیگر چی اسمی روش گذاشتن؟ واجب بخیر یعنی واجبی که بکلخ درش داره؟ بین چند عمر اختیار دارد لین نفیه تخییر لیل بکلخ زیرا در این نوع واجب بکلخ اختیار دارد پس انشاءالله شماره هیچ دفعه کتابو در جلسه بعدی با هم خواهیم خواند